بسم الله الرحمن الرحيم فصل الوكالة بحث بعد بحث وكالته شخص برا خودش نماين ده بيقير برا انجام كارش وكيل بگیره وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكّل او فيه و هران چه که جایز است برای انسان تصرف کردن در اون کار به نفسش یعنی خودش میتونه تصرف بکنه حالا چه در ملک باشه یا در بحث ولایت جایز است که ان یوکلا وکیل بگیرد موکل اونی رو میگن که وکیل میگیره اون طرف هم بش میگن وکیل پس جایز است که شخص وکیل بگیرد <تصفيق> وکیل بگیرد برای فروش کالاهاش برای خرید برای کارای ولایتی بحث ازدواج مسائل دیگر او یا توکل فيه یا اینکه خودش وکیل بشه از شخصی دیگر پس جایز است که وکیل بگیرد یا برای کسی دیگر وکیل بشود و الوکالتو عقدون جائزون میگه وکالت از نوع اقود جایزه هست یعنید اینجا جائز به معنی اون مباح نیست ها ما داریم عقد جائز و عقد لازم عقد جائز اون عقدی رو میگن که طرف میتونه فسخش بکنه مثلا شخص معامله زد مدت خیار تمام شد نمیتونه فسخش کنه پس خرید و فرو معامله زدن به لازمی لازمیست بعد از تمام شدن مدت خیار اما وکالت نه یعنی هر لحظه میتونن طرفین میتونن بر بگردن هم وکیل هم موکل پس وکالت عقد است. جایز از طرفین هست یعنی هر دو طرف میتونن هر وقت بخوان فسخش کنند خودش جلوتر میگه ولی کل من همه فسخوها متاشا هر یکی از دو طرف میتونن فسخش کنند هر وقت که يعني موكل موکل و وکیل و تنفسخو بموت أحدهما و فسخ میشه وکالت یا وکالت با مرگ یکی از دو طرف موكل و وکیل یا با دیوانه شدن یا اغماش که در کتابه دیگه میاره یکی دو طرف دیوانه شد والوكيل آ... أمين امین فیما یقبضه وف یصرفه يصرفه میفرماید وکیل امین است در آنچه که قبضش میکنه تحویلش میگیره برای موکل خود و در آن چیزی که صرفش میکنه از مال موکلش قبضش میکنه یا دفعش میکنه ولا یضمن الا بالتفريط لذا زامن نیست لذا زامن نیست الا به تفرید مگر زمان که کوتاهی بکند مثلا چطوری کوتاهی بکنه رفته کالای موکل خودشو داده به طرف قبل از اینکه سمنشو قبض بکنه اینجا کوتاهی کرده بله. فس وکیل امانت است و زامن نیست اگر بدون کوتاهی چیزی از دستش خراب شد ولا یجوز این یبیع و یشتریه الا به ثلاثتی شرائط جائز نیست که وکیل بفروشد از طرف موکل یا بخرد البته زمانی که وکالتش مطلق باشه مگر بس شرط مطلقا بهش وکالت داده اگه شما وکیل منی اینجا دکی جائز نیست برخرید و فروش کنه مگر بس شرط این یبیع بثمن المثل. اوریک فروخت با ثمن مثل بفروشه نباید بره به قیمت زیر بفروشه ان یکون نقدن نقدان بفروشه یعنی وامی نفروشه نقد البلد با نقد بلد باشه با اون پول رایج بلد باشه بله نقدن اول یعنی نقد بودن نقدی دوم یعنی نقودمون پول بلد ولا يجوز ان يبيع يبيع من نفسه و جای نیست که بفروشد و شروعش میارند و این که بخرد از خودش یعنی چیزی رو به خودش بفروشد یا چیزی رو از خودش بخرد چون اینجا متهم میشه. ولا يقرؤن على موكليه الا بإذنه با و چیزی رو اقرار نمیکنه بر موكلهش مگر با اجازش مگر یه جای اقرار بکنه که این وام بر من هست این جناه من کردم از طرف موكلهش نمیتونه مگر با اذنش فصل الاقرار فصل بعد در رابطة با اقرار هست والمقر به ضرباني انتزك انسان بش اقرار ميكوني بردونوه شخص اقراري روك ميكوني ان اقرارو ميغان مقربه. به ميغا والمقرر به ضربان انتزك بش اقرار مش بردونوه حق الله تعالى اقرار در حقوق الله مثلا شخص اقرار میکنه که زنا کرده دوزی کرده اینجا مقربه حق الله و حق الادمی دو حق آدمی اقرار بکنه که اغا من مال فلانی رو دوزی از فلانی قد به کارا پس مقربهی بردونه یکی ای حق الله تعالی دو حق آدمی فحق الله تعالی یصح رجوع فیه انه لقرار به حق الله متعال سهی هست جایز است صحیح هست رجوع کردن درش از اقرار به اون قبلا اومده اقرار کرده که من زنا کردم این در حق الله اقرار کرده دیگه اگر بعدا اومد گفت آقا من این کار نکردم این صحیحه پس رجوع کردن از اقرار در حق الله صحیح هست ولو اینکه در حالت اجرای حد باشه مثلا شخص اقرار کرده که من زنا کردم در وسط حد که میخوان برش اجرا کنن فرزن رجمی که فقه ها میگن در وسط آقا قبل شروع سنگسار یا در وسط میگه نه آقا من این کارو نکردم خلاص حرف حرفش اعتبار داره دیگه حد سرش اجرا نمیشه و حق لا لایسی حروجوه فیه ان الاقرار به اما در حق آدمی صحیح نیست رجوع کردن در آن از اقرار کردن به چیزی. اگر در حق آدمی اقرار کرد که من مال فلانی رو خوردم بدهکار فلانی یا ما در وسط نمیتونه بعد از اون اقرار بیاد و بر بگرده از اقرارش. و تفتقی رو اقرار الى ثلاثتی شرایط. ولی برای اینکه اون اقرار صحیح باشه اعتبار داشته باشه سه شرط نیاز هست. تفتقی رو صحت اقرار الى ثلاثتی شرایط. نیازمند هست صحیح بودن اقرار به سه شرط. البلوخ اونی که اقرار میکنه بالغ باشه. بچه اگر اقرار کرد اقرارش اعتبار نداره. ولو اون که نزدیک سند بلوخ باشه. شرط و شرط دوم اینه که اقرار کننده عقل داشته باشه. اگر دیوانه اقرار کرد که من زنا کردم پلان کردم، اقرارش اعتبار ندارد. والاختيار شرط سوم اینه که اقرار کننده اختیار داشته باشه. مجبور نباشه. ها فلاشین کف روی سرش باشه و اقرار کنه این اقرار اعتبار نداره. امکان بمال، و امکان اقرار بمال و تو شرط رابع و هو اگر اقرار در مال بود اقرار به مالی کرد اینجا شرط چارمی هم وجود داره برای اینکه اقرارش اعتبار داشته باشه اون که رشد داشته باشه شخص اینجا عاقل باشه و رشید باشه خب بله و اذا به بمجهول اگر به یک چیز مجهولی اقرار کرد اصلا گفت برای فلانی بر من یه چیزی هست رجع الیه فی بیانه بازگشته میشه به سمت اقرار کننده در بیان این چیز مجهول یعنی برای اینکه بدونیم این اون چیز مجهول چه چی بوده خود اقرار کننده بیانش بکنه اون چیز مجهول و بیان برای و روشن شدن بیا با اون چیز مجهول برای بیان کردن اون چیز مجهول مرجع اقرار کننده هست و در فقه میارند اگر چنانچه امتنا کرد از بیان بدون عذر زندان میشه و یسح الاستثناء فی الاقرار اذا وصله به و صحیح است استثناء در اقرار زمانی که اون استثناء رو به اون اقرارش وصل کرد مثلا گفت برای فلانی بر من ده دینار هست الا سه تا یعنی هفت تا استثناء آورد این استثناء اینجا صحیح به شرطی که وصل باشه اما اگر گفت من از فلانی ده دینار بدهکارم دو روز بعد اومد گفت جو سه تا اینجا نه بعد وصل بشه زمانی که وصل بشه به اون اقرار إلستثناء ايش وهو في حاله الصحة والمرض سواء وان اقرار در حال الصحيح بودن و در حال مریض بودن برابر است فرقی نمی‌کنه چه در حال صحت باشه اقرارش چه در حال مرض باشه فصل العاریه با فصل ب دید در رابطه آریه است آریه اون چیزی است که انسان می ده براي کسی می گیره برای انجام کار میکنه تو خونش نیاز به فرعون داره میره از همسایم میپرسه این میگن آریه آریه هم از قدر جائزة هست از لازمه نیست بله یعنی میتونه طرف هر وقت بر بگرده و کل ما يمکن الانتفاع به مع بقای اينه جازت اعارته اذا كانت منافعه آثارا میگه هر که ممکن است بردن از اون با باقی خود اون چیز آریه دادنش جائز است زمانی که آریه در منافعش یعنی زمانی که منافع اون آریه آثار باشه به چه شکل شنان اصلا فرغون کسی رو میری میگیرید تا رو انجام بدید. خب اینجا آریه جائزه چون فرغون خودش باقی میمونه کار طرف انجام میگیری یا یه تلومبه میگیری برای این که رو باد کنی. یا مثلا لباس کسی رو آریا میگیری که بپوشی بری جایی اینجا عینش باقی میمونه پس هران چه که ممکن است انتفا بردن با آن با بقای عینش بله مثلا یکی بگه آقا این میوه تو بده که من استفادهش کنم میوه اینه که اونو اصلشو موقعی که میخوره دیگه عینش باقی نمیمونه بله میوه رو اما در مورد خود شجر مثلا یکی درختی رو آریه بگیره از میوهاش ببره اینجا میگه صحیحین است که جواز از بحثایی رو در شروعات میکنه یا مثلا گوسفندی رو ببره و از لبنش استفاده بکنه اختلافیست ولی میگه صحیح اینه که جایز است خلاصه در هر صورت میگه اون عینش باقی بمونه زمانی که منافش آثار باشه منافش خود عین اون چیز نباشه الانت اینجا یک بحث دیگه وجود داره و اون این هست که بریم جلوتر و تجوز العاریتو مطلقتن و مقیدتن بمدتن و جائز است مطلق از وقت باشه. آقا این پرغون تو بده من کار انجام بدم وقتو تعیین نکنه. یا مقیده بمدتش کنه تا مغرب من کار انجام میدم و میارمش. و مضمونتون مزمونتون على المستعیری بقیمتی ها یوم تلفی ها. و اون آریه مضمون هست زمانی که تلف شد بر آریه گیرنده به قیمتش روزی که اونو تلف کرد بله اگر چیزی رو آریه گرفت تلف شد دیگه قیمت قیمتشobat بده اگر چه که کوتاهی نکرده باشه مگر در اون چیزایی باشه یعنی استعمال فیه باشه یعنی چی؟ مثلا لباسی رو پوشید لباس از بین نرفت کاهیده شد بر اثر پوشیدن فرغون و برد کار بست طائرش مثلا خب سویده شد اما اینکه عینش از بین بره میگه زامنه پس اگر با استعمال معذون بود زمانتی نیست مانند این که لباس و کشید خب لباس به مرور زمان چی میشه؟ کاهیده میشه اینجا ایرادی نداره فصلون الغصب و فصل بعدی در رابطه با غصب هست و من غصب مالا لأحد هر کس غصب کرد یعنی بزور گرفت مال کسی را به ناحق ظلمن مال کسی رو گرفت رده. لازم است که اونو بازگرداند و ارشو نقصی هی و همچنین اون جریمه نقصش رو اگر نقصی درش پیش اومده بود باید قیمتشو بده اون نقصشو باید بده و اجارتو مثله هی و اجره مثلش رو مثلا چیزی رو برده از اون چیزایی که اجاره داده میشن خب اون مدتی که در دستش بوده صاحبش اگر در دست غاصب نمی بود اونو اجاره میداد پولی گیرش نمیومد میگه اجاره مثل اون چیزی رو که غصب کرده چقدر اجاره پول اجاره داشته اون اجره رو هم باید به صاحبش بده آقای غاصب پس هر کسی غصب کرد مال کسی را لازم است که اونو بازگرداند اون نقصی رو که درش پیش اومده است اون رو بازگرداند مثلا دستش قد شده مشکلی پیش اومده از اون چیزی که مالین آقا دوزیده عبدش رو دوزیده فلانش رو قسم کرده خب فای اگر اون چیز مخصوب تلف شد بمنهو بمثلی امکان لهو مثل زامن مثلش هست اگر اون چیز مثل داشت یعنی اینکه یک چیزی مانند اون براش بخره مثلا یه موتور هندایی رو غصب کرده بود از بین رفت خب این مثل داره تو بازار تو بازار امروز بعد مثل اون بخربش بده یا مثلا یک کیلو گندم ازش تو غصب کرده بود اون خب مثلش رو بده بله او به قیمتی هی علم له مثل یا قیمت اون چیز رو بده اگر مثل نداشت اگر مثل نداشت قیمتش رو بده اکثر ماکانت من یوم الغصب الان یوم التلف. اکثرین قیمتی رو که از روز غصب تا یوم تلف داشته نگاه میکنن دو ماه در دستش بوده از ابتدای دزدیدن، تلف، غصب کردن تا اون روزی که تلف شده در این وسط بالاترین قیمتی که این چیزه غصب شده داشته چقدر بوده اون پولو به صاحبش بده شخص غصب پس اگر مثل نداشت قیمت اون چیز غصب شده رو که الان حلاک شده میده آقای غاصب کدوم قیمت رو میده؟ قیمتی رو که اونو غصب کرده یا قیمتی رو که روزی که تلف شده نه از روزت قصب تا روز تلف نگاه میکنند بالاترین قیمتی رو که اون چیز داشته چی بوده؟ اون قیمت رو بشمیده تا اینجای کار کافی است محفظه اون باید باشه